خب تق یه سوالی که برای خیلی پیش میاد، پیشنیات من پیشگاست بینم مشکل سو قبل قضیه در یه سوالی که الان پیش اومده باشه اینه که چرا توی همهشی که در مورد علم و فناوری هستش ما می خوامیم داستان صحبت کنیم یا می خوامیم روی یک نوع از ادبیات صحبت کنیم که البته که فانتزی علمی اگه درست چنگده باشم اگه این سوال پیش اومده چون یعنی فکر کنیم که جای این صحبت رو این صحنه چیه احتمالاً هر اون مشکلی هست وجود به که ما سعی کردیم که در طول 10 سال فعالیت این مشکل رو در بکنه. حالا ما که میگم کی هستیم ما یه گروهی هستیم که خودم رو در اون گروه عدلی میبینیم و توی فعالیت که 10 سال شده، تا حالا 19 سال شده سعی که که عدیبیاته علم تخیلی، فانتزی، حالا خیلی خیلی بگیم عدیبیت جان و که بهش هملویتی شده، مورد بیمهکی گرفته، یه جورایی به اون جایگاهی که احساس میکردیم که سرگوارش هست، برسویم. یه خودگاه لیز این که بیان شروع بکنم، بگم که گوه ما از کجا شروع شده، فعالیت همون چی, چی بود، یه کچولو میخوام صحبت بکنم واجه به همین قضیه که اح... اصلا اهمیت عدبیات جانری چیه؟ یا این که اصلا امروز باید یه همچی صحبتی داشته باشیم. یه سری از چیزایی که میخوام بگم را که برای خیلی از ازیزان که اینجا هستن به نظر صحبت‌های تکراری و کلیشه‌ای میاد یعنی خیلی از نویسندگانی که من می اینجا هستن خودشون در طرفدار این نوع ادبیات هستن خودشون نراغه به ما کمک کردن ولی به هر حال من یه موضعم خیلی خوش‌خوری راجع به این قضیه میگم علاوه بر اینکه پایگاه شما در مورد ادبیات ژانر ادبیات ژانر یه کلامه بزرگه خیلی از ادبیات فانتزی داخلش قرمز گل خیلی آدرنده ها هایی فتوشکن میکنه یا اگر کدی خیلی فکر فکر بهتر و فانتزی بکنن مثلاً آدرند عرب و, هر و هر فکر میکنم حقیقت اینه که ادبیات جوان حتی تمام اینارو دعوی میکنه ولی ما امروز میخوایم با دو, دو تیکه الیت تخیلی استرپ بذاریم چون که راحت داره به سوپا تر امروزم یک کوچولو فانتزی و این تیکه الیت تخیلی خیلی برامو در دستار درست کردم اما توستم اون تیکه تخیلیش یعنی کسایی که دوست ندارم این ادبیات رو همیشه مشکلشون اینه که آقا خیلی تخیالیه یه چیزی تو صحبت های سخندان رو قبلی و جاجب لیوازی گفتن که خیلی دوست ندارن برای رو میپرسی تجربه نکردن یکی از مشکلات ما با ادبیات علیم همینه یعنی میگن که دوست نداریم، بعد میگن که خب چیشو رو دوست نداریم و میگن که هیچی دیگه تخیالیه، خیلی تخیالیه و هیچ وقت نخوندنش. یکی از کارهایی که یکی از اهداف ما در توی این دوره همین بوده که بیان یه جوری در واقع یه بستری ایجاد بکنیم که بتونیم افراد علاقه من بکنیم یعنی این دافعه ای که وجود داره تو قضیه از بین بره و بیان داره اهمیتش چیه اهمیتش از خیلی جهتها شناسی صحبت بکنم خب اولین چیزی که میتونم بگم اینه که ما با کنار نوشتن ادبیات تخیلی یه بخش خیلی مهم و خیلی ادبیات می‌ذاریم کنار و لذتشو دست می‌بینیم اما از یه اهمیتش واقعاً کلی بیشتر از اینه. دلیلش اینه که ما بخوایم ادبیات علم رو تعریف و کویم های قطعاتشین دکایسش می‌کنیم. این تعریف کردن، مانیفست دادن تعریف کردن هست یه جاندار دریای راحتی نیست. ولی چیزی که روش تفاوت کردیم اینه که ادبیات علم تخیلی، ادبیاتیه که علم اون اصلیشه یعنی شما اگر علم رو از داستان بگیریم، چارچوبش از کامی پاشه. همین جور نتیجه‌گیریم که می‌تونه اهمیتش رو نشون بده. ما الان تو دنیایی زندگی میکنیم که دقیقاً مثل طریف علم تخیامی علم و فناوری رو نمیشه ازش گرفت یعنی علم فناوری فنابرایی به قردی تو زندگی ما تنیده شده که دیگه زندگی ما بدون او معنا نداره برای طبیعی ادبیاتی که به نگرمی اصلیش علم هست ستینگ اصلیش علم هست، ادبیات مهم برای ما باشد طبیعیه که اصلا از این به بعد شد علم تخیامی اونجور که بعضی از هاش میگن، و معتقدند تغییر بشه به ادبیات اصلی ما مسئله ای که تو این تخیلی گوییم ما واضی یکی از اون تصوراتیه که اشتباه وجود داره اینه که یه چیز غریبه ایه یه چیزی ای که ما نمی‌تونیم باش ارتباط بگیریم من اینا دارم فعلا مبدئی که خب من هایی سالی که واقعا طرفدار این تخیلی هستن یورا میگه مثلا در دستان درویرستان وقتی مثلا با هم کلاسی اون اصلا نمی‌شد صحبت بکنی یعنی فقط کافی بود که عنوان کتب رو ببینن در بکنن که خب این که حتما تو شیش ماجره‌های آشغانه‌ی پرسیز و گلازی نیستش رو پس اصلا به درد نمی‌کورن دیگه، مثلا راجب روبات‌هاست، راجب چند هم کهکشانه و اینکه که نمی‌شد، هیچ راه باس گرد که بگی که نه، این هم واقعا راجب ماست، راجب انسان‌هاست ولی خب توی یک زمینه این داره در اتفاق میفته سوالایی که به یک پرسیده میشه و نگرانی ها چیزهای دیگه و وگردن نه، واقعا چیزی نیستش که خارج از دنیای ما آدم ها باشه یه چیز غریبه ای باشه، چیزی باشه. چیزی باشه که به نخوره و اهمیت دیگهش چیه؟ این،, این که در مورد علمی اون بیدار کردن شروع شرقه اون زدن اون جرقه، حبه خصوص توی اینکه خیلی از کسایی که الان تو زمینه علم کار میکنن چه دانشمند هستن چه روزنامه‌نگار علمی هستن من بسیاری از فعالای نجوم آماتوری رو که میشناسم تجربه های ببینم مشترکی دارن یعنی نقطه شروعه براشون یه داستان علمی تخیلی بوده این نشون میده که این نوع خیلی مهمه به دلیل زدنمون جرقه به دلیل اینکه ممکنه که اون شور و به علم رو ایجاد کنه و مشاشت واقعا من فکر می‌کنه که در آینده‌اش قراره که علم یه نقش خیلی مهمی توی زندگی‌ش داشته باشه. پس این نشون میده که ما باید یه جایی شروع بکنیم که هنوز میشه ذهن افراد رو تربیت کرد برای اینکه داستان بمونه. شاید اگه به یه آدمی که به یه آدم بزرگ‌ها هم علاقه به ادبیات تاریخی علاقه مند به رمان سدیان بدیم کامنتش رو بکنیم. ولی اگه از یه جایی که مخصوصاً هوای اونای که هنوز اون و کاری و اشتیاق رو دارن، از اونجا شروع بکنیم برش آموزش بدیم. اون وقت ما با این داشت که واقعا خیلی تخیلی بیشتر علاقه دارم بعد تحصیلاتش رو می‌تونیم ببینیم. این مقدار رو گفتم می‌خواستم یک کوچولو راجع به فعالیت‌های گروه هم صحبت بکنم. ما در 12 سال پیش که دوره هم جمع شدیم، اون بستری که در واقع باعث که دوره هم جمع بشیم اینترنت بود. یعنی دادم بودیم که هم اون از ادبیات ژانری بودیم، هم دوست داشتیم و هیچ هیچ هم صحبتی نداشتیم کسی رو پیدا نمیکردیم که باهاش صحبت بکنیم و همدیگر تو انترنت پیدا کردیم اولین کار که کردیم این بود که خوبیه یه وبسایت را بندازیم بیایم اینجا مقاله بنویسیم داستان بزدیم خیلی حرکت هدفمندی نبود میشه گفت که بیشتر مخاطبش خودمون بودیم یعنی یه جورایی خودمون ترفدار بودیم و خودمون دوست داشتیم که این کار انجام بدیم جور کار دلی بود ولی کاری که, که جلوتر رفتیم دیدیم که واقعا باید این واژه رو بیشتر جدی بگیریم یعنی اینکه یه مقداری که خواننده پیدا کردمون یه مقدار که سایت پروفخارجیاش شد بگن که باید حرکتمون هدفمندتر باشه هدفمون چی بود همین چیزی که داغوار گفتم هدفمون این بود که بیان کنیم که ادبیات ژان رو ادبیات فانتزی و علم تخیلی رو به عنوان یه جاییه رسمیت بشناسیم و اون اهمیت و ارزشی که توی جای ده پیداشتا رو بشناسیم ببینید که واقعا چند شده بنابراین ما می تصمیم گرفتیم که فعالیت‌ها رو یه کاربرد ساخت تر بکنیم پس تصمیم گرفتیم که در واقع بروح مخاطب رو بشناسیم و بیان برای یه مخاطب بیشتر یه مخاطب انتر یعنی یه کسی که قطعاً توی مثلا حلقه ما نیست بیاین محتوا تولید بکنیم اینجا رو که ما با این نانجا رسیدیم که اینترنت به تنهایی یعنی اون دنیای مجازی به تنهایی نمیتونه پاسخگوی نیاز ما باشه نیاز داشتیم به یه چیزی بیشتر میتونه یعنی من که این قائلاسمون یه جنبه مجازی در آدم‌ها باعث یه جنبه حقیقی یه جنبه فیزیکی براش بذاریم و اینطور شد که ما اون جلسه‌های گروهی مون رو به انجام گذاریم که جلسه‌هایی که حالا در طول این سالیان امرور افسان جوها برگذار شده از فرهنگ سرای گرفته تا مثلا ناشر و جاهای مختلف یا جورایی هم همیشه آغداره بودیم یعنی همیشه مشکلمون رو بر برگذاری این جلسه‌ها این بوده انجام ما بهمون به یه فرصت میده که علاوه با اون مخاطب‌ها رو دور رو, رو بشین و بیشتر بدونیم که اشکالات کجا هستش. ما چجوری میتونیم بهتر معرفی کنیم؟ ولی یه هدف خیلی مهمتری هم داشتیم. هدف مهمترمون این بود که به جای اینکه بیان آثار خارجی رو ترجمه بکنیم، خب این قطعاً تو جایگاه خودش فرزاش میده. یعنی انقدر اثر خوب هست که ما نمیشناسیم و می‌خوندیم که تا حالا حالا, حالا, حالا, حالا جا داره. برای اینکه این ما هر هم طاره خیلی مو خوبه بتونیم خودمون داستان ژانری ایرانی داشته باشیم برای اینکه ما یه زمینه ادبیات خیلی غنی داریم صحبت که همیشه کریم حداکثر فانتزی اگر بخوام شروع کنیم بنویسیم بسیار ما غنی هستش برای اینکه این بدهنمون بده و شروع کنیم در حال الف تخیلی هم همینطور یعنی ما الان یه ای داریم که به علم فناوری علاقمند پیشرفته الی روزه ما رو دریم می‌کنیم و بسیار علاقمند هستیم. اینه که پس ما میتونیم خودمون داستان داشته باشیم میتونیم داستان علمت خریالی توالید بخویم. توی جلسه های حضوریمون یکی از مهمترین حرافرمون این بوده که خالت ورکشافت داشته باشه بچه ها دواره هم جمع بشن دنویسن این در یه خورده که پرپرمون پیدا کردهش به اینجاست که در ها، مسابقه های داستان نویسی برگزار کنیم که هفت دورش رو برگزار کردیم و بفرض شایسته اینه داستانای خیلی خوب نوشته شد یعنی داستان از نویسنده های جوان معمولا و حتی بعضی از نویسنده هایی که خیلی سال هم بود نویسنده بودن آثار شاپ شده داشتن اونم و توی مسابقه شرکت و ما دیدیم که واقعا چه این کارو کرد این یکی از دروازه های بزرگ ما بود توی این راهی که اومدیم و بعد چیکار کردیم تصمیم گرفتیم که سایتمون رو که حالا یه فعالیت ای توش داشتیم یه رسمی پرشت بکنه اینجوری شد که یه مجله به اسم شگفتزار به وجود اومد ما تصمیم گرفتیم که شگفتزار واقعا مثل یک مجله ادبی باشه یعنی همون استانداردها رو رعایت بکنه همونقدر قدر بیرانه در براید بیرایش در مورد آسای که میرا و دوست داشتیم که شگفزار مجلهی باشه که همه بخونند یعنی کسی که تو اینترنت میاد دنبال یه مجله عددی میگرده یاد حتما شگفزار رو پیدا کنه و حالا اگه نه همه شو یه بخشیش رو دوست داشته باشه حقیقتش اینه که بعد از این همه سالی که فعالیت کردیم فعالیت رو بروهمون شد یه جاهای موفقیت داشتیم یه جاهای شکست داشتیم اتفاقی ها افتاد اینه که ما از قرالیت اون نتیجه مطلوبی رو که مورد نظرم بود نگرفتیم یعنی درسته که یه عده ای حتی جوون ها مثلا نوجوون ها آدم مثلا موسیمتر که خودشون طرف این ادبیات بودن واقعا اومدن جمع شدن و خوندن ولی اتفاقی که افتاد که جامعه عددی همچنان با ادبیات جامجون مشکل داره یعنی جامعه همچنان ع و در نتیجه کار ما به عنوان کار عددی در نظر گرفته نمیشه ما کنیم روز که در واقع بتونیم در واقع یکی از کاری که می کنیم که جلس ها بود که بتونیم در واقع جمعیت های علمی مثلا تشکر‌های علمی رو از سمت خودون جلب چون و نظر ما می و کسایی که دارن در واقع در... علاقه مند به مشاور علم هستن کسایی هستن که میتونن این ادبیات رو حمایت بکنن میتونن در واقع به جلوتر رفتنش و پیشرفتش کمک بکنن در واقع حال یه چیزیه که یه جورایی علاقه مشترک تمام این آدما به حساب میاد بنابراین ما یه جورایی حساب حسابداری کمک اینا حالا اینکه کل این که تجربه ما چرا موفقیت تا اینجوریه، الان نمیتونم بگم. از این نظر می‌تونم بگم که خب ما به مورد داستان نوشتن خیلی پیشرفت کردیم. و مخصوصا در این زمینه که گفتم که باید مثلاً از ادبیات نوجوان، کودک و نوجوان شروع بکنیم، ما الان نزدیک به تقریباً ساله که با انجمن نویسندگان کودک نوجوان فعالیت داریم. و یه کارگروهی داریم اونجا جلسات هفتگی برگزار میکنیم اینکه فی روان نویسندگان کودک و جوان اهمیت این قضیه رو در واقع درک کرده و با هم می‌کنه که این جلسه‌ها رو داشته باشیم جلسه‌ها هم مختلف داره و اینکه یکی از مثلا اتفاقای خوبی که افتاده اینه که بچه‌ها خیلی جواب تو جلسه‌ها رو می‌دن یعنی می‌بینیم که واقعا اصل بعدی علاقمندی چطور میاد ولی از اون نظرش در واقع از اون جنبه‌ای که ما توی اینترنت دوست داشتیم که این کار رو به اون شکلی که خیلی مخاطب داشته باشه، خیلی پرطرفدار باشه، نمی‌تونم با من اینجا بگم که یه کار خیلی موفقی بوده. حالا اینکه شاید ما به سر انترنت رو نشناختیم، شاید مثلا علاله هم اینکه خودمون هرمون کاربرهای های اینترنت هستیم خودمون همون یه جورایی شیفه یه این فنالایی جلید هستیم، شاید خیلی خوب نتونستیم از اون محیط استفاده بکنیم و اینطوری شدش که الان ما در درواقع اون دخش درواقع انترنتی قضیه رو که مجلب بوده به اون شکل قبل ادامه نمیدیم ولی بریم ادامه همون و اتفایی که درست داریم بی اینه که درست داریم در واقع از دل این جلسه ها دوباره یک ادهه علاق من تشکیل بشن و بتونیم که در واقع این هدف اولی همون و اصلی رو که داشتیم که در واقع معرفی کنیم به همه این رو ادامه بدیم و اینکه حالا من اینجا هیچ اسلایدی اومده نکرده بودم واقعا نمیدونم چند آدمی نشنستن نشنستن. نفر از که اینجا نشستهن حالا اصن میدونن که مراجعه به چی دارن صحبت می‌کنه اصن سرچو چی تا سامیا نمی‌شناسن اسم مجله‌ای که خدمتتون یک مجله شایگزاره هست می‌کنه که دو نفر از کسایی که اومدن بدونن سایتمون مون رو رو آدرس conferencedata.ir که یه آدرس خیلی سرراستی سود و در تمام این خیلی دوست داشتیم رو اندازی کردیم قالبشام گفتم در واقع قالب یه درگاه مجله و اینکه ما خیلی یه بخش خیلی مهمی که روی سایتمون داشتیم همیشه این بوده که اون اخبار علم فنابعی رو داشتیم که معتقد بودیم اینا میتونه در واقع ایده بشه برای خلق داستان هر اتفاقی که توی یه چیز میافته یه جمله خیلی معروف از آتور سیکلارد داریم که احتمالا دوستان باش آشنا باشن میگه که هر فنابعی خیلی غیر قابل تشکیث از جادوه یه جورایی این در واقع این جمله ها یکی از جمله های بنیادیه برای نویسنده ها این که میتونن هر ایده ای رو بگیرن و شاخه برگش بدن طالب برحال این که من سایت رو معرفی کردم سایت در واقع یه گنجینه خیلی غنی از کارهای خوبه به خاطر اینکه ما میخواستیم که اون تصور منفی رو که از ادبیات علیم وجود داره نفیش کنیم. یعنی آثار خیلی با عرضش رو انتخاب کردیم و به اینجرسیم که این گنجینه باید بر اختیار همه باشه حالا حتی اگر که ما کار در واقع مجازی رو اجازه ادامه ندیم اینه که از طریق سایت دوستان در واقع میتونن اون مطالبی رو که هست ببینن میتونن ما رو نمایت کنن. اینی که قابل همیشه اون خونده شدنه و رضایت مخاطب تنها چیزی بوده که برامون مهم بوده چون که ما حداقل تو این کار خوشاخشود مالیش فکر نکردیم یعنی واقعا همیشه اینکه یه یه دایره‌ای بچه‌ دوست باشه در آن کمالم دور از هر گونه شعاری واقعا هدف اصلی اون بوده حالا مثلا یه روزی سیموا فان سوسایته اون به اون ارزشام فکر کردین ولی تو این مرحله چیزی که دوست داشته این بوده که در دیده بشه و یه منشأ الهامی بشه یعنی مخصوصا برای دوستانی که می برای دوستانی که پیدیره اگر یاد هستن، بتونه یه جایگاه کچی که اینها باشه. تشکت از همه و این خیلی